همینطور که اطلاع دارید امروز چهارشنبه ساعت 19 و همینطوری که به شما قول داده بودیم با برنامه آین سلامتی پنجمین قسمت برنامه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم به صورت زنده از استدیوی مشهد شبکه جهانی بلایت مهمان قدر داریم در خدمتشون هستیم حضرت آیت الله جناب آقای زیایی کارشناس ارشاد حقوق دکترای فقه و اصول و متخصص به اسلامی هاجا سلام خير عرضم عزیزان خیلی سلام خوش اومدید علیکم السلام و خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایتم سلام ارز می‌کنم. در ادامه صحبتامو که تو بحث قلب و اروغ بود از کتاب طب جامع امام صادق علیه السلام تعلیف علامه صد محمد کازم قزمینی ترجمه لطیف راشدی سعید راشدی، صفحه دویست پنج ای مفضل امام صادق به مفضل می فرمه. چه کسی قلب را در میان سینه قرار داده و با پرده محکم و سپتی و استحکام لازم آن را پوشانیده و با دنده های سینه و گوشت و اعصابی که بر روی آن قرار دارد آن را محافظت می نماید های در صفحه 207 ای مفضل قلب رو میخوام برای تشریح کنم. از حیث گردش خون که اکسیژن لازم رو به همه اعضا و جواره و تک تک سلولای بدن میرسن بدان که در مقابل روزنه ریه شش ها در قلب نیز هست تا قلب حرارت نگیرد به طوری که اگر این روزنه ها یعنی دریچه دلختی، سلختی، بحث خروجیاش از جمله سخرگ آورد، بحث بطن راست و چپ و از اضافی بین بطن راست و چپ نباشه. درست، حالا حضرت می به طوری, این، به طوری که اگر این روزنه ها ناهمه شوند و ترتیب خود را از دست دهند، نفس به قلب نمی رسه. یعنی اکسیژن لازم به ازوله قلب نمیرس و همچنین اکسیژن لازم توی خون نیست که به توسط گلوبوله های قرمز گویچه های قرمز خون که حامل اکسیژن وقتی نرسه انسان می میره، سنکوب میکنه تموم میکنه میره آیا هیچ انسان آقلی چنین میپندارد که این همه مصالب دقیق و علمی در بدن به کار رفته و خود به خود به وجود اومده باشه آیا عقلش سخن خود به خودی یا ماده بی جان کاری از دستش بر بیاد قبول میکنه؟ وجدانا نه پس تمام این مخلوقات از جمله قلب انسان ای داره و اون آفرینندهش خدای یگانهی احد لا شريك له حالا واسطه های فیض الوهین از جمله امام صادق علیه السلام و امام رضا برای جلای قلب آدمی میفرمایند الکومسرا یجلل قلب و يسکن اوجع الجوف باذن الله تعالی دردهای درونی مخصوصا در دستگاه گوارش و همچنین جلا قلب با مصرف صحیح میوه رسیده گلابیه. گلابی خب اگر کسی هم معدش ضعیف بود یا بعضی مسائل خاص رو داشت میتونه از کمپوت گلابی تازه استفاده, استفاده. کنه حتی شخصی دردی در ناحیه قلبش داشت و قطایی که بر او قلب نشسته بود امام صادق امر کرد کلکم مصرا قال لرجل شكا اليه وجعا يجده في قلبه و قطاء عليه فقال كلكم كل مصرا امام قزاي رؤوف عليه السلام تو بحث رقه قلب و همچنین اشکریزی بجا مثل از خوف خدا عنابه بعد از توبه نسوح مثل گریه خشیت من خشیت الله مثل گریه شوق مثل گریه بر مظلومیت چارده معصوم هی واسطه های فیض الهی هم از دست دشمنا ضربه دیدن هم از دست بشری که حرف از واسطه های فیض الهی میزنه اما حرف شنوی لازم از چارده معصوم نداره بله اگر اطاعت و طبعیتش رو از 14 معصومین بالا ببره ذریب ظلم به این بزرگوارا کمتر میشه حالا اینجا اشک بجا و به موقع که نشانه رقت قلبه امام رضا رءوف فرمودند علیکم بالعدس فانه مبارک و مقدس و انه يرقل قلبه و یکثر الدمعه هم اشک بجا رو زیاد میکنه هم رقت قلب میاره همچنین امام رضای را او فرمودن هر کسی که قلب قمگین داره قلب محزون داره حزین بخواد مسرور بشه و شادی و ترابت طبیعیشو به دست بیاره دست. تو جیره و سبد خانوار تو قضاهاشون کدو زیاد بذاره مم. اذا طبختمو الطعام فاكثر اکثر القرع فا يسر قلب الحزين قلب غمگین و افسرده با مصرف کدو در جیره غذایی در هفته برطرف میشه غمگینی و افسردگی قلب فواید زیاد داره چربی های مضر خون بیاره پایین مؤمنان چه کلسترول باشه چه تری گلیسیرید خون تقویت حافظه میاره عقل رو زیاد میکنه حالا مباعث خودمون یسر القلب الحزین همچنین امام رزای رعوف فرمودن کل الرمان فلیست فیه حبت تقع في المعدته الا انارت القلب و اخرست الشيطان اربعین یوم اگر کسی انار شیرین مصرف کنه خیلی فوائد داره تو بحث رقیق کردن خون کاهش قلزت خون تصفیه خون و اگر بچهش دیر زبون باز میکنه زود زبان باز میکنه زود به سن شبابی میرسه افراد دیگه تو بحث معده که وارد بشه چنین انار شیرین رسیده ای قلب رو جرام میده از انتهای روده کوچک و بعضی ویتامین ها از جدار معده جذب دستگاه گردش خون میشه خون؟ قلب انسان نورانی میشه و همچنین شیطان گنگ و کرلل میشه یعنی شخص قدرت تشخیصش بین حق و باطل زیاد میشه و پیروی از الهامات ربانی میکنه و پشت پا میزنه به القاءات شیطانی درست وقتی پشت پا زدی به القاءات شیطانی در واقع شیطان رو کرولال کردی گنگو کردی پکر کردی دیگه القاعت شیطانیش اثر گذار نیست تا چهر شبانه روز حالا در همین راستا فواید دیگه ای هم هست مثلا حالا من شش. که داریم میکنم بشه. هفته پیش در مورد رژیم لاغری صحبت کردیم اینه که لاغرن, لاغرن. چی مصرف کنن که چاق بشن قرار بود بعد از اون بحث کسانی که چاق هستن و میخوان لاغری، شن یه رژیمی بود که فکر می‌کردم به همین محفظ هم مربوط بشه. بله بله. اینم تو ذهنتون باشه که میای بله. صحبت خاص خب گفتیم اگر کسی لاغری مفرد باشه، چیان مصرف کنه؟ خب گفتیم با هفته پیش گفتش بعد بله. حالا اگر کسی هاجگاه ها چاق, چاق بله. هست، یک بار تست تیرویید میده، نکنه کمکاری شدید تیرویید داره. اون رو باید دهمان کنه تا چاقی مفردش که به اصطلاح عامیانه میگن چاقالی بادوم شده بشکه شده یا از در وارد میشه اول شکمش سلام میکنه بعد تنش میاد اونا خوبش یه بار دیگه نه چاقی که شخص داره به خاطر پرخوریه باز این دو جوره یک بار پرخوری استرسیه باز باید پیش متخصص روانشناسی بالینی یا علوم رفتاری بره یا پیش یه استاد اخلاق بره تا این درمان پرخوری استرسی بشه یه بار دیگه نه اشتهای کاذب داره دست. به خاطر اشتهای کاذب هی میخوره حالا تروباوات میگه بعضی چیزا مکروهه چون اشتهای کاذب میاره مثلا بلا تشبیه اگر این نون باشه نون داغ باشه نون داغ خوردن مکروه دوم آدم نون تازه رو اول بو کنه استشمام کنه بعد نون تازه بخوره مکروه چون استشمام نان اشتهای کاذب رو زیاد میکنه نزد تو روی آتشیه نه کرد. حالا اگر این اشتهای کاذب رو بخوایم از بین ببریم که پرخوری نکنه که پس لرزه های پرخوری یکیش اضافه وزنه و چاقی مفرط از بین بره طور روایاتشیه چند مطلب تذکر داد یک سیب میخوری اول بو کن و بعد سیب رو بخور یکی مفرح قلبه که هفته های گذشته توضیح دادم و دیگر این که سیب و آب سیب اشتهای کاذب رو از بین میبره و چربی های اضافه بدن حتی در جدار شکم رو زب میکنه مصرف شده چجوری باشه؟ چشم, چشم. یکی دیگه از چیزهایی که اشتهای کاذب رو از بین میبره مصرف خورماست بعد از غذا. لذا تو اسلامی و سایلشیه جلده هیوده چاپ اسلامی تهران میگه هفت عدد خورما بعد از غذا هفت عدد زیاد داره یکیش چیه پرخوری رو از بین میبره اشته های کاذب رو از بین میبره با. اونی که شما فرمودین اگر اضافه وزن داره چل بیبیان به بالا 15-20 کیلو اضافه وزن داره چاقی مفرد داره و بیماری های زمینه ای و یا بیماری های متابولیکی نداره اینجا با چهار عدد سیب اضافه وزنش در طی دو ماه 15 تا 20 کیلو کم میشه در بیمارهای مختلف اگر یوبوست و نفخ شکم نداره یک عدد سیب رو سهر یا وقت اذان صبح میخوره با شکم گرسنه یک عدد بعد از صبحونه یک عدد بعد از نهار یک عدد بعد از شام تو 24 ساعت چه عدد سیب بیشتر نشه بله اما اگر شخصی که اضافه وزن داره یوبوسد داره و نفخشی کم داره اینجا دیگه تفاله سیب یا پیاره سیب رو نخوره آبش رو بیره یه استکان سهر یا اول از اون صبح یه استکان بعد از صبحونه یه استکان بعد از نهار یه استکان بعد از شام. یه سآل اینجا تو پرنتزا جا وجود مد این سیب رو با پوست یا بدون پوست احسن اگر مثلا اسید اوری که خونش بالاست با پوستش به به شرطی که شن کلیه نداشته و نفخشی کم چون سیلیس اس آی او چار نفخ میاره درست. یه بار دیگه نه بیماری نقرس هم نداره میتونه باز بخوره از باب پیشگیری اشکال نداره اما یه بار دیگه شن کلیه داره نفخشی کم داره اینجا میگیم بدون پوست. پوست حالا از چیزایی دیگه برای کاهش اسید اوری که خونش استفاده میکنیم مثل جوشانده برگ یاسه بنفش بله بسیار عالی. خب، جواب ما من حالا قبل از اینکه سال بعدی بپرسم، با سه بینندگان عزیز شما تماس ها رو بگم. سه پانصد یازده، و بیست و پنج و و ده که رو برای ما ارسال میکنید. حجم پریمکا زیاده ازتون ممنونیم از اینکه برنامه رو مورد استقبال قرار میدید. پرماکاری سی می کنیم کنیم تجمم می کنیم با هم دیگه چند پکی موضوع داره اون رو می تا ده دقیقه دیگه تلفن ها رو میگیریم هر چهار تلفن با هم می گیریم و بعد پاسخ از ععرضهمون داریم و بعد میرییم با ذرا سراغ چهار پم بعدی. حالا حت... حت... یک سالال از چند هررارج حضا... تش... حت ها حتی خارجییا به این فرمایشات معصومین به بعضش پی هر اگر دوست داریم یکیداد دو تاره بگی مییمن مثلا رابرت تامسون در کتاب درمان گیاهی که دو تا از دکترای محترم ایرانی ترجمه کردن. مثلا برای درمان پرخوری ناشی از اشتهای کازب اومده ایشون کتابش میاره میگه آب سیب و آب انار ملست. یعنی ترش و شیرین خیلی ترش نباشه میگه این اشتهای کاذب به قزا که سبب پرخوری انسان بشه و پس از او اضافه وزن و چاقی مفرد بیاره که یک بیماری درمان میشه حالا بحث توفاه، و آبسید به بحث رمان اخسان و رمان که تو روایات بیان شده حتی رمان سورانی که ما تو بحثای روایات شیه داریم که دکتر لبید بیوونم در طب المحصومین آورده تو قسمت مؤمن خواست بنفسج گل بنفشه که باز اینشالله بحث بنفشه شد ببینم سالای مردم چیه بعد توضیح بدم اینجا داره از امام صادق علیه السلام اربعون یعدل نتباع بعضی نسخه داره طباععه چهار خوراکی هست که اینها طبیعت های انسان رو معتدل می کنه یعنی کسی که مزاج دمویش مزاج سفراویش مزاج بلغمیش مزاج سوداویش هر کدوم از اینا یا چهارتا اینا از تعادل خارج شده درست حالا با چهار چیز می تونید تعادلش برگرده امام صادق عدیسان فهم بود چهارتا چیه؟ یک ارومان سورانیو دیدی یک قسم از اناره درست دو والبسر المطبوخ خورمای نارست قبل از اینکه که بشه اینو طبخ کنن بخورن تعادل مزاج میه سوم، ولبنفسجو ما دو قسم بنفسش داریم یه بار بنفسش فرنگی داریم یه بار بنفسش معطر یا بنفسش طبی درست. اینه میگیم گل بنافشه معتر یا بنافشه طبیل یا بنافشه وحشی هم میگم سه تا اس بره تو روایات شیعه البنفسج در روایات شیعه صد و بار اومده حالا خواص مختلف داره حالا مبایست خودم میگیم شخص اشتهای کاذبش از بین بره پرخوری نکنه چاقی مفرد و اضافه وزن پونزه بیس به بالا نداشته باشه و یا درمان شد حالا یکی از چیزهایی که طبیعتهای انسان رو معتدل میکنه چیه؟ بنفشه معتر، بنفشه طبی، بنفسج بله. چهارمی چیه؟ وله هندباؤ کاسنیه هندبا کاسنیه بله خواستم بحث انا بگم آن. که پزشکی جدیدم، حتی خارجی مثل رابر تامسون تو کتاب درمان گیاهیش باز استفاده از کلمات اهلوی تحصیمت رو طهارت کرده حرف رو ولی اسم گوینده حرف رو نیورده با عرض معذرت از همه بزرگوارا و از متخصصین داخل خاج کشور سعی کنید که دزدی علمی نباشه اگر فرمایش کسی رو بلاخذ فرمایش معصومین رو بیان میکنید نام مبارک معصوم رو ذک کن به عظمتت افزوده میشه نه اینکه از عظمتت کاسته بشه سپاس سپاسگزارم خب شما تماسهار من مجدد میخونم و بعد میرم سراغ پرمک های شما بزرگه واران 3511 2225 41 53 2225 41 69 2225 41 3059 10 پرمکاتون هم میتونید ارسال کنید. خوده این پرمک اومده من ابتدا میخوام این پرمک رو خونم متاسفانه یک عزیزی اس ام اس دادن 9357293 اولش متاسفانه بعدش خوشبختانه اینکه به اعتیاد اعتیاد تریاک داشتن و خوشبختانه ترک کردن 6 ماهه که ترک کردن قرص پرونولفین میخورن روزی یک عدد الانم دوست ندارم با کسی رفت آمد کنند کم حوصلهن زود عصبی میشن و برای این آرازه بسیار بسیار نراحت هم و میخوانی راحلی باشید من میخوام این سوال دو بخشش کنم حالا خیلی خلاصه اون بزرگواران که متاسفانه به اتیاد اتیاد تریاک دارن و اون از که ترک کردن راه برشون بدیم از نظر تخصصی تغذیه و تخصصی سموم کسانی که معتاد به دخانیات یا مواد افیونی ظرف دو هفته بخوایم سموم از بدنشون بیرون بره روزی دو لیوان وسط روز یک لیوان آب پرتقال شیرین عصرانه یا اول شب بعد از نماز عشا یک لیوان آب لیمو شیرین ظرف 15 روز سموم از دخانیات و مواد افیونی از بدنشون بیرون میره اما از حیث تخصصیه غوانشناختی غوانشناسی بالینی و علوم رفتاری افراد سه گونه تو بحث اعتیاد بعضی ها جا شش ماه طول میکشه تا میل شوقش به ماده افیونی از بین بره بعضی ها یک سال بعضیا تا دو سالم طول میکشه حالا یه نکته اعتقادی هم بگم خدمت بزرگوارای بیننده و اون اینه که ما تو روایات اسلامی داریم گاهی شخص رو تو قیامت بیشتر زمان عقاب میکنن بعد میگه خدایا من این گناهم در این مدت زمان محدود بوده چرا بیشتر از این من عقاب و عذاب میکنی خطاب میاد چون که توی بنده میل و شوقت به گناه از بین نرفته بود فرصت پیدا نکردی گناه رو دوباره تکرار کنی به خاطر اون میل و شوقت عذاب بیشتر می‌کنی حالا خواستم یه نکته اخلاقی اعتقادی هم بگم از ایش سرری به بصیرت ماشاءالله خوبان باداست خواستم مراقبت و مواظبت از خود و مجموعه مخصوصاً کوچکترین واحد اجتماعی که خانو خانواده است بالا بره پس میل و شوق به گناه هم به اصطلاح تخصصی علم اصول حالت تجری میاره یعنی آدم جرأت پیدا میکنه به مخالفت حاکم شرع تجری هم عقاب آوره بنا بر فرمایش بعضی از بزرگان علم اصول بنا بر روایات معاد یک سوم از قرآن مجید در بحث قیامت بحث کرده قیامت خیلی عمر مهمیه پس همینطور که میل و شوق به گناه نباید باشه میل و شوق به دخانیات مواد افیونی و های روان برگردانم هم نباید باشه خودم میل و شوقش هم تجریه عقاب آوره. لذا درمانش هم زمان بره گفتیم شش ماه یک سال تا دو سال طول میکشه به بحث مراکز بازپروری و ترک احتیاط خب این همه اینشون که اصابانی هستن و عصبانیت دارن اینا ای... عوارز ناشی از ترک حالا باید به خودش برسه بحث این دوتا لیوان که گفتم آب پورتغال آب الیم این دوتا رو باهم نخوره مسمونیت قضاقی میاره بله جدا جدا بخوره من دیگه احتیاط تام کردم چارت ساعت و بیشتر فاصله زمانی انداختم یعنی آ آب پرتغال و آ بلیمور با هم بگیریم معمولا وقت صرف نمی‌کنن با هم میگیرن دستهای سرنگیه داخل و خارج کشور بعضیا مرتکب میشن آب پرتغال و با آب بلیموشینی هم میتونن میگن برای خوردگی خیلی بهتره نه این اشتباهه مسئولیت قضایی مییاره اینو جدا جدا مصرف کنیم اصل حرفشون درسته اگر ویتامین C و ویتامین B این دو در بدن کم شه آدم تن سرما سرمان میخوره سرمان خودگیش در دو... طولانی میشه اصل حرف درسته اما این عملشون درست نیست که این دوتا رو با هم بطی میکنن من گایی دیدم به کودکانشون میرن و این اشتباهه ان نظر تخصصی تغذیه و تخصیصی سمشناسی اشتباه تولید سم میکنه خب اه، اه، اه، یه سوالی هم که الان را به چیز به من گفتم تو پرمکا بوده و معبود شده به این بحث استرس و اینها استرس بعد زایمان هم پرخوری گفتن میاره این هم من. راهکار این به خاطر چیه هر عادت ماهیانه هفتاد الا هشتاد سیسی خون اد درست یکی از عوارض خونریزی های قاعدگی چیه افسردگی دیگه درست زود اکور رفت در رفتنه پرخاشگریه بحث کمخونیه حالا اگر زایمان طبیعی باشه بین دیویز تا سی ست سی سی خون ادس میده حال اگر دهانه رحم دوازه سانتیمت باز نشه یا سر بچه بزرگ باشه اینجا دو تا بیسه بخیه میخواد باز خون ریزی بیشتر شه. حال به خاطر بعضی مسائل کورتای شد اصلا این فاصله لگنی باز نشد قفل کرد بچه خفه میشه مجبوریم سزارین کنیم چه قدیما که راست و چپ شیکم و یا میانه شیکم چه حالها که از زیر ناف سزارین میکنن هر چند شیکم من میتونن بچه بیان خب. حالا در این مورد که مثلا سزارین شد 600 الى 700 سیسی خون از دست میده خونی زیاد شد افسردگی متوسط به طرف بالا میره شدید میره نکت سنجای بی جا داره پرخاشگر میشه زود اکوره در میره اختلالات تو خواب و خوابش سبک میشه یوبوسط عارضی میگیره این همه عوارضشه درست پس ما باید کمخونیش رو درمان کنیم درست با خوراکی هم میشه مثل آبسیب با عسل مثل شیر عسل صبحگاهی. مثل هفته بعد بعدن نهار مثل چند برگ کاهو با نهار و شام که فولیک داره مثل لبو اسیدفولیک داره مثل خورفه بغلت و زهره اسید فولیک داره یا اون فقر به 12 هم که میتونه با مثلا سائد یعنی زرایق گوسمن، سردست گوسمن یا ران گوسمن یک سیخ یک سیخ کباب دو سیخ کباب بخوره درصد ویتامین های به دوازده و ویتامین آش بالاست باشه. کمپونی اکچنده یا بدخیمش که فقر ویتامین به 12 خوب میشه خودش. از که تازه بدم آنمی اسید فولیک آنمی فقر آهنم که گفتون قبل از اینکه که خالا تلفن که خانم نجفی از نجف اشرف سلام شبک جهانی بلایت بفرمیت خانم نجفی سلام بفرمیت خانم نجفی سلامتون داریم از کجا؟ حالا خیلی خوشحاله. بعد دو روز من موتور ایجاد نمی‌کنم. من چی می‌گفتم؟ بله عزیز. خانم عزیز، بفهم. خیلیش بفهم. سلام. خدا خواهش حالا خیلی خوشحاله. حالا خیلی خوشحاله. حالا خیلی خوشحاله. حالا خیلی پوکی اوستخان شدید داریم؟ ادامه سوالتون رو مصادتون داریم؟ بله سوالتون آره داریم آره. آره. آره. پوکی شدید دارم دو که مثلا هم ایران خیلی پوکی اوستخان زیاده و سخونه یه نوع چنسیاتا که رو من باید اینو بخورم و یه نوع چنسیاتا که خورتم در یکی باید بخورم که این مصادی حال که چیو خورده بعد دا دا دا دارم. درست. منم گفتم یعنی که تو ماسکیشم برام که یادآوریدم که یه تو چشمه بدنم بعد یهو خوابم برام رفتش اون یادم اومد یهو مثل یکی پای منو دیدم که شیکا، هو خوب خوب درست. خانم شهری چش ببینم شیکا کنم یا خیلی ممنونم از من زیاد چش خیلی ممنون خیلی ممنون اون من خیلی ممنون متشکرم ممنون به خدمت این من چارتو عزیز چارتو بگیریم عزیز. از خواهی میکنم من. چارتو چارتو تماس بگیریم تماس و اذن من 4 و تماس بگیریم چش من درست گفتم که از نجف اجرفین عزیزمون تماس گرفته بودن حال تاکید بشن از نجف آقای حسن من از تهران سلام شبکه جهانی سلامت متشکرم خواهش میکنن میخواستم بپرسم که چند وقتی چند سالی از از نایه در پایین که بیانم و به سمت رو یک حالت دلگرفتگی و دلشوره و دلتنگی شرکی دارم حالی دکترهای عرصا بود رفتم و داروها استفاده که از هم نگرفتم خواستم ببینم تا یه زنین آجاها راه کنم بعدی متفاوتی که انتدا دارم بیگارویی پا درم شوا که میاد تو را هم دستور بخواد بیش از دیگه تا بازش بره سعی سعیم بذارم او پامیان که کسی راحتتونیه خدای خورده آرام میشه و درخور خیلی آدی هست. خب، خودم هم نیست. تا حالا تو میگه که با خودافس. خوب، تا حالا رو آقای امانپور از شهر شهریکورد پشت خط هست. زمانپور بر. از خاپ میکنم. الو الوای زمانپور بله. سلام بفهمید جهانی بلگ خانم زمانپور هستین کی سلام خستم سلامید صداتون هست صداتون روی استودیو بیاین زادنمون 4 ساله که استفاده ریپایس کنید لعنت می‌بینیم باشه بعد استفاده بنجه خوب بشی چش باشه حتما چش از تماستون ممنونم یه تماس دیگه دوستانم متعفهمون بحث کنن که انشالله بتونیم در خدمت بزرگ آرام باشیم شما رو تماس ها رو من یک بار دیگه میخونم سف 511 225 41 53 225 41 69 225 41 13 تماس بعدی رو بحث میکنیم <تصفح> الو صدای تلویزیونتون رو ببندی صدای گیرندتون رو ببندی الو من یه تقاضا بکنم از بینندگان عزیز ارجمندم وقتی تماس میگیرید حتما صدای گیرنده رو کامل ببندید صدای ما رو از تلفنتون و اون دستگاه تماستون داشته باشید اینطوری باعث میشه که فکر کنید که صدای ما رو نمیشتن یا صداتون نیست خب اگه تماسی نیست من پاسخ ها رو بگیرم تا هرچند خب که مشغول حالا شما سال سوال اول من بپرسن عزیزمون گفتن از نجف اشرف پوکی استاد از ارزه سلام به محضر مبارک بیننده عزیز از نجف اشرف سلام ما را هم به محضر مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام برسانید صلی الله علیکه یا امیرالمؤمنین یا اسد الله القادم علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام به شما از شوبت که پوکی استخوان در زنان و دختران بیشتره به خاطر فیزیولوژی و ساختاری بدنش قضیه اینه که عادت ماهيانه دارن، حاملگی دارن، دوران شیردهی دارن، دوران یائسگی دارن. و حتی آمارهای کشور جمهوری اسلامی ایران 35 درصد از زنان و دختران دچار پوکی استخوان یا بیماری استئوپروزن. در مردان و پسران چون از سی فیزیولوژی با زنان و دختران فرق میکنن برانها بیست و پنگ اگر کلسیوم بدن کاهش پیدا کنه از کجا بفهمی کاهش پیدا کرده انگشت نشانه خودت با دستت این نکه انگشتت رو فشار میتی دی. اگر دیر اومد بالا کلسیوم بدنت کنه حالا کلسیوم بدن فسفور بدن ویتامین دی بران منیزیان اینا وقتی درصدش کم میشه دوچار پوکی استخوان میشن سطح استخوان استحکامش به کلسیوم و فوسفور در بدن چند تا استخان است که سریع شکلنده میشه اگر کلسیوم بدنت کم باشه یکی استخان های سرشانه ترقوه یکی استخان های لگن یکی هم استخوان ران یعنی این پوکی استخوان رو یا بیماری استپوز رو این وزن بدن تحمل نمیکنه. لذا گاهی شده با یک ععدسه زدن یا یوبوسصد داشتن در دستشی زور اضافی زدن یا یه مختصر تن را رفتن بدون اینکه ضربه بخوره به بدن استخون میشکن. باید مواظب باشین عفونت مغز قلم نکنید. و استخوان پیدا نکنین ان بیننده عزیز ما همیشه سالمان با عافیتم خواستم بگم مواظب باشین عفونت مغز قلم و استخوان پیدا نکنین حالا چیکار کنیم که بزرگوارا پوکی استخوان نگیرن و یا پوکی استخوانشون درمان بشه دو چیز هر روز هفت عدد خورما با هفت عدد مغز بادام شیرین درختی لوز و مغز بادام شیرین درختی مصرف کنید دوتا دوتا با هم به جایید یعنی یه خورما و یه دونه بادام افرین احسن دوم هر روز یه قاشق مربخوری سیاهدانه با اصل بخورید حبت سودا شونیز مع اصل اصلاً که همون اصلی که همیشه تو با اصلا اسلای گرم مخصوصاً برای خانوما چه چیزایی دیر سبب میشه که دیر استخونا جوش بخوره یکی ترشیجات یکی چیزای توندوتیزم مثل فلفل سس فلفل ترشیجات مثل از ترشی بندری لیته اینا خب اینا رو نخورید اینا سبب میشه دیر جوش بخوره یک داروی دیگه هست که طبیعی و از فشار صخره های کوه ها هست. عرب های عزیز می فرماین عرق الجبال عرق الجبال خارجی ها میگن مومیا ایرانی ها می فرماین مومیای. لذا مومیایی لزیکوهای دارا به فارس و استحبانات در ایران در این شکاف های صخره ها همین عرق الجبال هست پس از اتاریا یا متخصصین گیاهی مومیا یا مومیایی یا عرق الجبال هر چی هرچی تر باشه قیری سیاه رنگ بر شفاف این خالص داره اندازه یک ماش امروز میخوری سر ساعت مثلا ساعت هشت فردام هم همین سر ساعت اندازه یک ماش می‌خوره بعدن که از بانداج یا گچ در این رو تو آب حل می‌کنید چه شکستگی هر روز ماساژ ملایم میدین از طریق تبادل سلولی ترک های جای معینگی و جای شکستگی رو حاقه جوش میده و حال این که پزشکی جدید با بانداج و گچ گرفتن و چیزهای دیگه ترک استخون نمیتونه جوش بده. بهزات توی سرمای خشک یا گرمای شدید با جای شکستگی درد میگیره. اما اگر مومیا به همین سبکی که گفتم اندازه دو تا ماش بخورید و بعد از اینکه از بانداج و گچ در آوردین روزی یک بار جای شکستگی رو با این محلول مومیا ماساژ ملایم بدین، ترک استخون هم جوش می‌خوره. درست. مطلب دیگه ای که مهمه برای حضرت خانمه و دخترها و هر کسی که در سن منتحیض هست یعنی دارای عادت ماهیان سعات بیولوژیک رگل هست اینه که تو جیره قضایش حتما اصل رطب، تمور، سیب، گلابی، کاسنی، گل بنفشه معتر، صایحان کوهی ساعتر بحث آویشن و نعنا بذار تو جیره قضاییش باشه ولی اون مختصر ولو کم کم حالا این نکته‌ای که سوال بعدی بزرگوار بود برای سوال قبلی هم سال. خوبه آره گفتن چند سالی است که از ناحیه قلب به سمت پایین نزدیک معده دل گرفتگی و همون بل. دل حردا دارم بعدم بی قراری پاره شوابه هم برای سوال قبلی که حضرت خانم پرسید هم برای ایشون که بیقراری داره و درد در ناحیه پاها که باید یکی پاهاش مکم فشار بده تا دردش ساکت بشه امروزا تو داروهای شیمیایی پماد پیروسکام یا دیکلوفناک یا پمادای انگلیسی کریم فاردیان یا نرحتی قلبی داشته باشی پماد آمریکایی جینگای مثلا ماساژ میدن. تو پزشکی اسلامی گل بنفشه معتر که بنافشی طبیه که بنافشی وحشیه که تو روایاتش یه میگه البنفسج این رو یک بار بحث ماساجه هم پوستش خوب بشه هم درد و خوب بشه هم پوکی استخان نگیره اینجا گل بنافشی معتر رو در پایه روغن بادام تلخ دهن لوز مورون تو پایه روغن بادام تلخ میجوشنیم و بعد این نوع روغن بنافشه که با پایه روغن بادام تلخه چی, چی دیگه توش نهاریزیم دیگه همین گل بنافشه معتد 20 نیم ساعت کافیه بعد این رو پاشونه ماساژ بدن برای هر دوشون خوبه چه سال اولی چه سال دوست. بعد دوست. همچنین بخورن گل بنفشی معطر بنفسج بنفشه طبی رو که بر پایه روغن بادام شیرین یا روغن زیتون طبیعی که بهترین روغن زیتون طبیعی روغن زیتون لبنانیه از اسپانیایی و ایتالیایی بهتر بعد از روغن لبنانی مال گیلان مازندران بهتر تو بحث تخصصی ها ها. پس اگر میخوان بخورن که تو روایات شیعه هم حاجقا داریم که نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینم تو روایات داریم از شیعه اهل تسنن قال امام علی علیه السلام استعطو بالبنفسج سعوت با بنفسج خب این بعضی درد داشت که و این آقا هم خوبه که گفتن یک سردرد های خاص میگیرن و آره. بیقرارن درست با این فرمایش امام علی علیه السلام استعطو بالبنفسج روغن بنفسج معتر بر پایه روغن زیتون یا روغن بادا میشین اینه تو بینی بکشن بینیش شسته تمیز کرده با آب بلن یا سرم نمکی تصاف فهم بینی تمیزه تمیز. این چیزی توش نده حالا سعوت با بنفسج بعد امام علی علیه السلام می فرماید فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ عَلِمَنَّاسُ اما بر بعضی نسخه های دیگه این در بحار جلد شست دو بود اما بنا بعضی نسخه‌های دیگه یعلموا داره کافی و وسائل مستدره کافی جلد 6 صفحه 521 حدیث 7 وسائل جلد 2 صفحه 164 حدیث 1825 مستدره جلد 1 صفحه 430 بله پیغمبر فرمودند لو یعلم الناسو ما فی البنفسجه لحسوه حسوان اگر مردم فایده گل بنفشه رو می بر پایه روغن بادا شیرین یا روغن زیتون خالص هر آینه جرعه جرعه می نوشیدن در درمان بعضی از سردرد چه میگرنی چه کمخونی چه ناشی از قاعدگی دردناک چه ایشون که بیقراری داره و استراب داره و خوابش سباکه و دردهای استخوانی داره خسر فهمیدین من بره بره هر تصویم. تصویم. من فقط یه نکته رو جای اشاره کنم که مجبوری یه مدار پاسخ ها رو کوتاه بدیم چهش، چون چهش. تماس ها زیاده چهش. یه تماسی داریم یه عزیزی از مشهد تماس میگیرن چند بارم تماس گرفتن قعد شده ما اومدیم که جوابشون بدیم بعد بعد باید بریم سوالا رو یه دو تا ساعت داره سوال سومم بود آره ب... گفته بودن این که لاکو پیست دارن روی پوستت لک های سفید چن اینو این هم خلاصه اینم دو مدل بینندگان دو مدل یک بار به حق ه دو چشم قف یعنی لک های سطحی پوست بشره و لایه مالپیگی میگیره اما به لایه درما و درم نمیرس. یک بار برس یعنی پیسی یعنی ویتیلیگو هم بشره لایه مالپیگی درما و اندودرمو میگیره تا به عذاله میرسه اینو میگیم پیسی حالا در درمان لک های پوست اینجا دو تا دارو هست یک برگه های اولش با غین آخرش با قاف برگه های یازقاقی در برنج شلتوکدار الاروز عرب ها تو فرمایم تروایات در این دم کنن و کم کم به صورت تناوبی بخورن این یک داره دوم امام رضای رعوف علیه السلام فرمود بله. سلق مع لحم البقر برگ چقندر که طبخ بشه با گوشت گاوه تازه گوشت گاوه مونده ها بیماری جرب بیماری گری بیماری گل میاره نه گوشت گاو تازه با برگ چقندر که طبخ بشه حالا این هم به صورت تناوبی بخورن تمام. هفته چند با این بیماریشون خوب نشه. خدا آش به جون معصوم کنه. مرسی. ان که تمام بزرگوارا مشکلات جسمی و روحیشون حل بشه. میریم سراغ تماس‌های تلفنی. خیلی جالبه وقتی که اعلام کنم تماس تلفنی، اینجا خط تو شروع میکنه به زنگ خوردن و این هم برای من جالبه. آقای پناهی از مشهد تماس گرفتن در خدمتشون هست. آقای آقای رو انتن. آقای پناهی از کشور رومانی در خدمتتون هستیم آقای پناهی بفهمت آقای پناهی سلام نده کن من از خواهی میکنم که اشتباه گفتم از کشور رومانی تماس میگیم در خدمتتون هستیم سلامت کنم خیلی ممنون خیلی ممنون, ممنون من یه سآلی داشتم من یک پونده. پسر پونزده ساله دارم اینشون چاقی داره چاقیشون خیلی حدود ده, ده کلی پونزده, ده ده ده پونزده کیلو چاره. چاره. ساله حدود ده تا پونزده ساله شده چهاره به مشکلی که داره هاش بزرگه آزمایشی که ما دادیم یه مقدار تستسترون خونشون بالا بود بعد ایمان از یه مدت تکرار کردیم تقریبا با حالت عادی برگشته ولی هنوز این به این اندازه این بزرگتر از بسه سابله و فرد ترمیلی نکرده دوست. خواستم از جناب آجاما سوال کنم که آیا میشه درستهی خوراکی کاری کرد که این مشکل حد بشی یا خیلی مرسی از تماسه سرون خیلی متحکم آقای پنایی خب تماس بعدیمون بزرگواریمون از تهران جناب آقای حسینی از تهران آقای حسینی سلام شبکه جهانی ولایت به الو سلام علیکم سلام علیکم سلامت, سلامت, سلامت باشین سلام تشکر اومدین شما خوش اومدید سوال در خدمت حاجی‌ها مستعبدل الله از بفرمایید سوالتون بپرسید صداتون داخل استدیوی آی حسین می‌خوام आवाज در خدمت حاجا واه ماه دوستاشنی نورانی ایشون من جرادر میبوسم تشکر می‌کنم از شما برنامه خوبت و اجازه من در خصوص پسرم می‌خواستم سوال کنم که ایشون چند خونی داره خیلی دوست داشتم که ببینم من چون میدونم و روی ذهن و روحو تاثیر میذارم چطوری میتونیم به این صورت این رو بازترایف کنیم. چه کمخونی توی آقای حسینی، آقای حسینی. دید چشمی چشم, یعنی چشم سیاز و پوستم بخوام فنویی مثل پوست جناب علی ماشاءالله شفاف و خوبو ما به چه صورتی میتونیم این رو عوض کنیم بهتر بشه. یه آیا آی حسین یی قد نکردید اجازه بدید من سوالام بپرسم کم خونیه پساتون از چه نوع است از نوع ولاد من دقیق نمیدونم این که کم خونیش خیلی چیز نیستش ماجون میگم مینور میگم معمولی تالاسمی تالاسمی تالاسمی تالاس چش فاید. چش خیلی خوب متشکرم <تصفح> خب خوب تماس بعدیمون از تهران جناب آقای تواب تبایی هستند واسکان دوستامون آجابا تاو سلام. جواب سلام. سلام که جهانی بلایت بفهمید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام شما به جواب. متشکرم. خانوم یه مادر مشکل ورن بده در صورت دارن که بیشتر هست و به مرور کمی میتونه در تمام طول روز وجود داره. مشکلات هورمونی یا قلبی و کلیوی و اینا هم روی صورتشون ورم دارن؟ در, در و توی صورتشون نایتا و توی گفته برهم دارن؟ نایتا ولی 200 در صورتش. من مرسی از تو نایتا و توی مامو نامو چه آقای سلیمی از فسا، خانم کریمی از فازما من ازش خواهم کرد. بس کن. خانم کریمی سلام چهای کجا نی بله بفهمت. خانم کریمی سعیتون داری؟ بفهم. سعیتون روی آنتن بفهمت. قاسم کریمی سلام عرض سلام خانم باجی دکتر برنامه ها خانم حاجی آقا تشریف میگردم متشکرم محمود سوالم این بود که من یه خواهری دارم حدود 26 تا سالشونه هم وسواس شدید داره به جوی که اصلا زندگیشون مختل کرده هم اینکه بیماری آی بی ای یورود تاریخ پزشکیش رو بعد پردراری تکرر ادرار هم داره که اصلا خودشم میتونه کنترل کنه یعنی ادرار نظارت خودشو نمی‌ریزه اصلا دیدم که این چخو باید کنم که شوهر رو باه استفاده کنم خیلی ممنونمیشکر. خیلی متشکرم خیلی ممنون. خواهش می‌کنم خدافظی شما. شما. خب ما چهار تماس هم که قول دیم چهار تماس گرفتیم پاسخ میدیم و بعد دوباره برمیگردیم به تماسیتون. تو گوشه من عطا فرمان میگن همین یکی رو بگیرید و بعد وصل میکنیم این خط رو وصل میکنیم فرمودید از کجا تماس می‌گیرن؟ سلام شبایگی جوانی ولایت بفرمایید. خانم زریفی بله. سلام شورای جهانی ولایت بفرمایید سلام خدمت شما سلامت, سلامت باشین متکرم میخواستم راجواب بپرسم من پای چابم خیلی ورم میکنه پای چابتون فقط ورم میکنه بله وزنم خیلی میره بالا ب... بله سلام حالت شما است وزنتون وزنتون بس شده وزنتون هم گفتید میره بالا بله وزنم میره بالا چاغم پامم پای چارم خیلی ورم میکنه ولی میگن چربی, خون. که باشه. پام ورمش چربی خون تیری گریسیم نداری؟ چربی خون تیری گریسیم نداری؟ چربی خون تیری گریسیم نداری چربی خون تیری گریسیم نداری چربی خون تیری نداری چیزی نه چربی دارم نه قندارم فقط کبد هم میخورده چربی کبدتون چربی دارم. خیلی ممنون ما چکریم ده دقیقه رو پاسخار از آج آقا داره دواره برمیگردیم به تماس تلفن خب آقای پناهی از رومانی تماس گرفتن گفتن به سری پونزده ساره دارن که ده کیلو اضافه بزد دارن و سینه هاشون هم بزرگه و حلی واسه درمان بزرگی که اضافه بزد دارن چند چیزو باید ترک کنن پنجاه درصد بیماریشون خوب میشه یکی قندهای شیمیایی قند، شکر، شینیجات قندنادی ها و شینیفروشون دوم اوسانس های شیمیایی نشابه گازدار، آمیوای شیمیایی و مانندی سوم چربی‌های با ترانس بالا این ستا رو که ترک کنن 50 درصد بیماریشون خوب میشه. به جایش طبیعی بخورن. مثلا جای قندهای شیمیایی قند طبیعی بخورن. خورما، توت خوش، عسل، کشسته زردالو، قیسی، اناب مثلا. ایش. به جای اسانس‌های شیمیایی آب آب جوشه بلم شربت طبیعی خودشون درست کنن مصرف به جای چربیه با ترانس بالا روغن کنجد و روغن زیتون بخورم یه قاشق با نار روغن کنجد یه قاشق با شام روغن زیتون جای گذین گاشتی درست شد؟ زنانه در این آقا پسر شما رفته بالا که استراجنه هرمون مردانه تستوسترون حالا با باید کاهش هورمون به زنانه به ایشون بدیم و هورمون مردانش بالاتر بده کاسنی تو جیره غذایی این فرزند باشه روزی هفت برگ کاسنی یا یه استکان عرق کاسنی این مال اون بزرگواری که از رومانی سوال کرد سال بعدی اون حسینی از تهران بودن که گفتن در مورد پسرشون برد. برد. کم خونی دارن سالی فهمیدید که مثل که تالاسمی کم بله بله کم رو آقازاده آقای حسینی از شهر تهران تالاسمی مینور که خفیفه سه تا شیره رو اگر قاطی کنی تالاسمی مینور فرزندتون خوب میشه شیره خرما شیره انگور شیره توت به نسبت مساوی نیم کیلو،, نیم کیلو نیم کیلو نیم کیلو یک کیلو یک کیلو یک کیلو خوب همش میزنی یک قاشق پلو خوری صوب میخوره یک قاشق پلو خوری شرب تالاسمی خوب میشه آنان رشت ارزی استخوان‌های فرزند گرامیت باریکه کم حاصله سود زود کوره در میره هوشش خوبه اما هوشیاریش کمه یعنی اگر تو کلاس دست یا کتابخانه یا پشت میز مطالعه هست توی کتاب نیست تو کلاس نیست خیال بافیش بیشتر از فکر کردنه. مهم. اینجا رو به اصطلاح میگیم هوشیاریش کنه. حالا این درمانش همین. یه سالی هم پرسیدم که وا منم اینسهال پیش مد و, و نتونسته بودم بپرسم این که میگفتن که پای چشماشون سیاه افته و دوست داشتن مثل از دالی شفاف و. اینکه پای چشمان حالت سیاهی افتاده ببخشی لفظم بد میشه. یه بار جایی کار میکنی که هیدروکربنای های محیط زیاده. مثلا جنوب شهر کار میکنی. مثلا تو مکانیکی کار میکنی. نمیدونم کارخونه کار میکنی که زرات معلق در هوا اینها زیاد. سخت های زیاد. یه بار دیگه مثلا میگم این مثاله. مثلا دخانیات. سیگار، پیپ، چپا، قلیون مثلا. یه بار دیگه اصلا, اصلا اینا نیست بلکه کمخونی داری به نوع فقر ویتامین به 12 لذا چشمات تو گرده، گیجگاه تو گرده زیر چشمات رنگش برمیگرده و درد در جناق سینه به صورت دردهای منتشره دارن یعنی آنژینای صدری اینجا حتما تو جیره غذایی هفته هفته سه بار یک روز در میون یک سیخ کباب گوشت قرمز گوسفندی زرا یا ران گوسپند یا باطنه راستا حتما بخوره ها. تا فقر ویتامین ب12 خوب بشه برای شادابی پوستت ویتامین آ، ویتامین ب ویتامین سی ویتامین دی ویتامین ای اینم مؤمن کرم و فضل خدا دعای خیر امام زمانه تو بحثای ذک درمانیام نماز شب خوبه برای همه به برای مؤمنین و مؤمنات دوم وضو که میگیرید آب وضو رو خشک نکنید سوم حمام استخ که میرید این بیرون سرتون بدنتون رو خوش کنین اما با حوله و دستمان صورتتون رو خوش نکنین جنبه های معنویش مثل نماز شد و آب وزور رو خوش نکردن از روایات گفتن جنبه های پزشکی جدید تا ویتامین رو یه مختصر توضیح دادن چیزایی دیگه هم هست بعد. ما موز خواهی میکنم میکنم که یه, یه،, یه سال هم اونجا رو پیش اومد میگن تو هممم و اینه که میرید صورت رو با کیسه یا با لیف نشورید آقل. این هم آقل. هست درسته بله بله. داخل همم هم این کار بله. رو نکن صابون شامپو به صورت نزنید کف دست بزنید دستتونه به صورت بکشید لیف و کیسه به صورت نکشید خب سال بعدی های طباطبی از تهران گفتن که خانمشون ورمه صورت دارن همینطور هم چاقیه مفرده چاقی که صحبت کردیم فقط ورم مال صورت. ورمه مال ورمه بدن چه دست و پا چه صورت شوری زیاد نخوریم مثل خیار شور شوریایی هایی که مشهدی ها درست میکنن نمیدونم این بزرگوار ها چی میفرمایم ها. همچنین شب تخم مرغ کوکو نخوریم چربی زیاد هم نخوریم در کل روز هر روز یک قاشق مربخوری یا به اصطلاح قدیمیا یک کفلمه یا به اصطلاح روایات شیعه راحتون راحتون یعنی گودی کف دست یک کفلمه سیاه دونه بخوریم به یک قاشق سیاه دونه حتی در کسایی که دیابتی هم و به خاطر کمکاری هم کلیه هاشون پاشون ورم میکنه ورم پاشونم خوب میشه درست سیاتونه. خب خانم کریمی از فسایی اجتماع نکنم خوهر... فسایی اسفحانه آره گفتن که خواهر دارن 26 هفت ساله واسباسه بسیار شدید دارن تکرور ادرار دارن و راهلی واسه این جریعه ماست این که وسواس دارن او بزرگوار بدون پاسخ مثبت به واسباسه و کسی رو شک دادن پاسخ مثبت به شیطان دادنه و بنا هست من و شما عبدالله الله باشیم نه عبد شیطان لذا امام صادق علیه السلام در ابواب مقدمات عبادات و وسائل شیعه شیخ عاملی جلد یک یک روایت تو اون باب میاره علاج جل وسوسه میگه به آلارم به این تحریکات کاذبه وسوسه پاسخ نده چرا چون از القاءات شیطانی و آدم میشه عبدالش شیطان نه عبدالله باش و عبدالله باقی بمان ما دست از کسی رو شکی و وسفاسی بردار علاج وسفاسی یک چیزه محل ندادن به القاءات شیطانی فهماش امام صادق اگر اهل مطالعه و تحقیق و پژوهش هستیم از علمای بزرگوار ما از شهر خانسار خاندان ارگانی محقق و پژوهشگر شیخ محمود ارگانی کتاب وسوسه و وسواس از نظر اسلام و علم روز نوشته خیلی جالبه تو جهان اسلام نظیر نداره چاپ دار الزخائر شیعه صفائیه قم دوست اون کتاب می‌خریم یکی از برادرای گرامیش هم دکتر روانشناسه این کتاب دیویست خورده ای صفحه صفحهی ها جوا همش از آیات روایات بحث کرده و سی و پنج صفحهش مربوط به روانشناسی بالینیه وسوسه بس چیه درمانش چگونست بسیار کتاب خوبیه اهل مطالعه بخوان مطالعه کن این ماله تیکه اول خوهر جانشون که سآل تیکه‌فرمایش این برای برای خواهرشون بود ایشون فرمایش همین ایشون خواهرشون تکرر ادرار هم داره. چه. ادرار دو جوره. گایس سرد مزاجیه و افت متابولیسم بازان به اصطلاح فیزیولوژی گایتون. سد مزاجی به اصطلاح ما و طب مکمل و طب گیاهی. یک بار دیگه نه، تکرر ادرار استرسیه. اگر استرسی باشه باید روی مصبت های زندگیش فکر کنه پوانه های خودش فکر کنه منفی‌ها رو تو ذهنش مرور نکنه تا ریزش بی اختیاری ادرار نگیره دلست. به اصطلاح میگه مثبت نگر باش نه منفی نگر اما در بحث اون اول که اگر مثلا فرض کن دیابتیه <تصفيق> چون دیابتی وقتی وقتی خونشون نمستانه میشه بیماری چکمیزک یا ریزش بی اختیاری ادرار میکنه یا اگر کسی سرد مزاجی شدید میشه و کالری بدنش کاهش پیدا میکنه مثلا اگر این نوجوان یا کودک ده ساله بود کالوریش هزارو مثلا فرض کنید اگر نوجوان اگر جوانه و سن جوانی مثلاً فرض کنید 15 سال بیا تا 25 35 خب مخصوصا تا 25 خب این که 15 سال تا 25 سالگیه این کالری بدنش چون تو سن رشد کالری بدنش باید 2200 باشه حالا اگر مثل مایی که میان سالیم، کالری بدنش 1500 بود این توم توم دستشویی میره دستشوییش رنگش سفید مثل آب تکرار ادرا داره این باید کلیه‌هاش گرم کنین به دو استخفان آبجوش ولان که نوک قاشق چایخوری پودر زعفران توش باشه و یه قاشق پلوخوری پودر شاخ نبات این ستارو رو با هم هم بزنه اگر هر روز صبح به جای نسکافه قهوه شکلات، کاکاو و چای به جای اینا صبح دو استکان اینجوری آبجوش ولرم بخوره مهم. که نوک قاشق چایخوری پودر زعفران و یه قاشق پلوخوری پودر شاخ نبات کلیهاش گرم میشه دیگه تا زهر کلیهاش کمکار نمیشه گرم میشه یوسخ خنل کلی یا فرمایش امام صادق عمل کنه روزی یک لیوان آب هویج زرد ایرانی یعنی زردک با قول عربای بزرگوار میگن جزر اینم یوسخ خنل کلی کلیهاش گرم میشه بله اگر حضرت این خانم که خواهر جانت بود اگر ازدواج کرده است. سخت جنین مکرر داشته یا بارداری های ناخاسته و زایمان های پشت سر هم داشته این بزرگوار هم دوچاره ریزش ادراری میشن چون یک سری آسیب های روی اسفنگتر های پیشابراه پیش میاد دیگه بیشتر از این میمتونم تو خب یه خانم زریفی از گنابت این فقط سال رو دیگه مختصر کنیم چون زمان ده ده ده. برنامه کم هست بر به هم برسیم پای چپشون ورم کرده بوده و وزنشون هم میره باره و چاخستن این اینکه پای چپتون ورم کرده پیشی یه متخصص کلیه میرین حتما کلیه چپ نارسا نباشه تو دفع اوره و کراتین یعنی کلیه چپت کمکار نباشه اگر بالای زانوت این قسمتی که تو تشهود نماز دست میذاری اگر گزگز کنه روی مایچه چارسد گزگز کنه مرمور کنه تونتون به خواب رفتگی بره کرخ بشه یکی از علامتاش اینه که چیه کلیه کمکار همون قسمت دلست. مثلا راست کلیه دلست. راست هم کمکاره چپ کلیه چپ هم کمکار پس گاهی ورم مربوط به کمکاری کلیه همون قسمت درست. یک بار دیگه ورم به خاطر بعضی مسائله مثلا دیابت داره و دیابتش رو متعادل کنه رو نرمال کن. یک بار دیگه نه. مثلا نارسایی نسوج داره باید پیش یه بافت یا پاتولوژیست بریم که ببینیم نارسایی نسوج نداشته باشه توی مویرگا توی سخرایی هستی مخصوصا توی برگشت ها یعنی توی سیاه رکا و وریت ها به صورت کلی داروی عمومی درمان ورم سیاه این یه داروی عمومی ها ولی برای تشخیص بالینی باید پیش یکی از این سه بزرگوار بریم تا تشخیص دقیق تر بشه اختت. خب میدونیم سراغه اضافه وزن هم همینجور که بزرگوار فرمود در تخصصی ارتوپدی و مفاصل و فاصل تخصص ازانو هر کیلو اضافه وزن ده کیلو فشار اضافی به زانو میره مثلا دوچار دردهای زانو میشه چاقی شکمی یا جداری اینها رو هم که یه آقای سوال فرام اینها گفتیم سه چیز رو باید ترک کنن در پاسخ به سوال بله. اون بیننده از رومانی بله آه. قندهای شیمیایی نخورن اسانسهای شیمیایی نخورن چربیای با تانس بالا نخورن بعد در درمان چاقی مفرد گفتیم در 24 ساعت 4 سیب یا 4 استکان آب سیب بله اگر بیننده ای هم اضافه وزن داره و هم چاقی مفردش توأم شده با دیابت چه به نوعه؟ قنده شیرین چه به یه سال در مورد همین موضوع رو اسمس کردن پرمک کردن من بگم که آیا به جای سیب هم میشه سرکه سیب خورد یا نه؟ سرکه یه سیب کسی میخوره که هارت برن یا سرسوزه دائمیه معده نداشته باشه؟ ریفلاکس نداشته باشه، یوبسد هم نداشته باشه. حالا سرکه سفید رو مخلوط با آب یا قاطی سوپش میتونه بخوره. یا قاطی سالادش. اما اگر یوبسد داره یا سرسوزه‌ی معده داره یا اسید معده‌ش زیاده یا ریفلاکس برگشت اسید معده به مری با محتویات یا بی محتویات معده داره، اینا نباید سرکه استیک بخورن. اون کلمه کلمه‌ای که اضافه کردم هجوا. اگر کسی اضافه وزن داره و دیابت داره، اینجا همه مطلبایی که قبل گفتم رعایت می‌کنه به اضافه. اینکه قرص شیمیایی متفرمین می‌خوره. هفته اول روزی یک عدد، هفته دوم روزی دو عدد، آره. هفته سوم روزی سه عدد. هفته چهارم یکی کم میشه بزوری. دو عدد آفرین. هفته پنجم یک عدد به حالت تناولی تناول. آفرین. خب تماس بعدی سرکار خانم محمدی اگر اشتباه نکنم از شاهرود. و کنم کاناتاق فرمان که تماس ها بگیریم امروز خوشبختانه برن... از شاهرود درسته خانم محمدی از شاهرود تماس گرفتن تلفنشون وصل میشه علاو سرکار خانم محمدی سلام شبکه جهانی ولایت در خدمت شما مزرگوار هستی <overstire> خانم محمدی، خانم محمدی صدای گیرندگانتونو ببندید از طریق تلفن صدای ما رو داشته باشید. خب می‌تی که ایشون پشت خط نیست. سلام. خانم محمدی لطف کن همین الان صدای گیرندگانتونو ببندید. صدای ببندید. سلام سلام. من صدایتون دارم خانم محمدی. صدای گیرندتون خانم محمدی ببندید. صدای من از تلفن داشته باشید. علیکم سلام. سلام علیکم. سلام گلو گوی سرگیجه بعدی بهم دست میده دمای سرگیجه نوراژی چیه میتونم جوری با تدارکری میتونم بهتر بشم سردردم دارید زیاد رفتم سردردم داره خدمت محمدی بله سردرد باشه بل سر فقط گیش می فقط گیج میره حالت گیج زدگی و الهی چطوریه کم خونی یا خ کم خونی دارم کم خونی دارید خانم محمدی نه کم هم ندارم مصرف درست کم هم ندارم خیلی ممنون واسه تماستون متشکرم خیلی آقای آقا رو آقای زمانپور زمانپور از شهر کرد آقای زمانپور سلام بفرمایید شبعی که دانیه ولت علیکم سلام سلامت باشی صداتون خیلی بد میاد از زامانپوری، یکم بلندتر. الو. خشن باشین، علاوه‌شین باشه ان شاء صداتونو داریم، بفهم می سوالتون. خشن نباشید. سلام. صداتونو. خب، بعد بعد، اج مجاهد، اج زامانپول لود کنین، مجاهد تماس بگیرید، بچا خطتونو بس میکنن، خط بعدی رو دو دوستان متقفه فرمان اگه لود کنند که بس کنن. بله. من متوجه نشدم، فقط فهمیدم که از خانم نوروزپور از آمل بفهمید. الو خانم نوروزپور سلام بفهمید. علیکم صداتون به شدت ضعیف میاد. بله جوآفان. بریم. بله. بعد نقرس داری بله بعد من تنه میلرزیه. میخورم، میخورم. بعد میاد یه دکتر. بله. بله. براه. براه. براه. براه. براه. چش زیارت ندارم اومم جدا نمیخوام چش خیلی ممنونم متشکرم خانم نورسپور از تماستون تماس بعدی رو به من اعلام کن ابتدا بعد وصل کنن که آقای جمالپور از از شهر کرد ها زمانپور نبودن بس آید شهر کرد میگن که ارتباطشون قطع آقای جمالپور بفهمید آقای جمالپور شبکه جهانی ولایت بفهمید فکر میکنم شما با تلفن همراه تماس می‌گیرید بعد درسته آقای جمالپور سلام فقط سریع سوالاتتون بگید بله سوال بگید تا چیه؟ هپاتیت چیه؟ چون هپاتیته. بله آقای جواب خب آره متاسفانه این بنده خودم با هپاتیت بر خب یه خط دیگه میگیریم بعد میرسونم آقای حسین پور از شهر بوشهر واسه می‌کنید آقای حسین پور سلام شبکه جهانی ولایت بفهمید سلام صداتون خیلی ضعیفه بولانتر صحبت کنید لطفا صداتون ضعیفه سلام بفرمایید خیلی, خیلی ضعیفه سعی کنید بولانتر صحبت کنید ممنونم بله بله, بله بفرمایید سلامت باشی. خواهش داشتم. الو. بفرمایید، من صداتونی میشنامم برای جوش صورت؟ درمان استرس. در مورد استرس که خیلی ممنونم، تشکرم تماس آخر رو بس کنید. گندم کار از بهشت. دیگه آخرین تماس الانمون بعد میایم سراغ پاسخ‌ها. خانم گندم کار سلام بفرمایید. سلامت باشین. بفهمید سوالتون بفهمید من کم کمخونی دارم ک... چه ناری؟ هشته آبمایش دادم گفته هشته دوازده یعنی باید باشه هشته بعد خیلی سردست دارم سرگیجه سرم یک سره گزگز میکنه بعد اه... مثل که حالا کپ داشته باشه یک عرق میکنم میخواستم چه؟ خیلی ممنون. فقط نو اگر کنم خونت رو متوجه نشدم اند اینجا. که خونی نگفته فقط گفته. گفتن هشت و بعد دوازده میشه. آره. خب یکی برای خواهرم این بارداره یعنی یک یکبار سفت کرده دو ماهه. الان دوباره بارداره. بله. بعد. همش مثلاً لکبینی داره یا نه؟ مرسی خیلی ممنونم از تاستان خواهم بیاندون کن خواهش نمیدون خب خیلی خلاصه چون تماس خیلی زیاده یعنی میبینید پشت خط میاد گاه خط ها به هم میریزه خانم محمدی از شاهروت فهمدن 20 سال است که ناناتی حساب دارن سرگیجه دارن و فشارشون هم خوبه و مشکل جسمی نتر بلد. اینجا حضرت خانم صبحا یک قاشق چای خوری پودر سنبولاتیب پودر داروخونه قرص گیاهی صدامین هر روز صبح ساعت شیشانیم یک دونه میخوری شبا شام زود میخوری قبل از خوابت آثاره گل ساعتی یعنی والی فلار من حاجه رو از خواهی میکنم یه پرامتز باز کنم یه پرامتز در های موضوع آمده 913-008 همسرشون سردرد شدید داره فکر و بیهوده و آرام مصرف فکر میکنم محبوب به جای آرام بخش همین دوتا براش بوده آره، آره. و والی فلور. این به کارخونه کارخونهیه که داروگیه هیه همجوری هم بخوان خودشون درست کنن بخورن سنبولو صبح یه قشد چای خوری. گل ساعتی پودرش یه قاشق چایخوری. در نصف استکان آبجوش ولرم هم میزنم میخورم این خوب میشه. دنباله سوالش چی بود؟ دیگه همین بود سوالشون. مال سالگیجهشون هم باید ببینیم که آیا کمخونی داره یا نه. گفتن ندارن آیا تعادل مایع گوش داخلی به هم آه. خورده یا نه؟ این اونجا باز باید پیش متخصص گوش و حلق بینی که آیا قبلا عفونت داشته، نداشته اینا داشت. الحمدلله فشار که نداشت. نه کمخونی هم نداشت. خانم نوروزپور اگه اشتباه نکنم فقط نود... چیزای آه. ترش و تند و تیز و سش بده. نه بخورم. خواهیم نوروزپور از آمر گفتن که کسالت دارن نقرس دارن بدنشون درد میکنه بدنشون میلرزه قرص ورس میخورن قرصشون متوجه نشتم چه قرصی گفتن قرصهای و... کلشیسینه آره کلشیسین زده نقرسته درسته کم اشتاهم هستن قضا نمیخورن آب هم کم مزرم ببین مادر خودت فرمایش فرمودی ها اکثر این مشکلات به خاطر کم آبیه در تخصصی اورولوژی و نفرولوژی میگن اگر شخص در 24 ساعت 8 لیوان آب آشامیدنی سالم بخوره های کلیوی نمیگیره نقرس یعنی MSU رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل مفاصل متورم میشه مایه آبکی جمع میشه از شدت درد شبا خوابت نیم بره. شما کلیات فعال کن چهار لیوان آب آشامیدنی سالم چهار لیوان آبجوش بلرم تو جیر قضاییت بذار یعنی هر شیش ساعت دو لیوان یه لیوان آب و آشامیدنی سالم یه لیوان هم آبجوش بلرم بخور پنجاد درصد بیماریت خوب میشه حالا داروی گیاهی میخوای برای درمان نقرست اگر شن کلیه نداری سیب رو با پوستش بجا پوست سیب زده نقرس اگر شن کلیه داری جوشانده برگ یاس بنفش زد نقرس اگر سنگ کلیه نداری حب سورنجان حب سورنجان روزی یک عدد میخوای درگی و آفرین بله بله شاید که سنگ کلیه نداشته, نداشته داروشیمیاییه کشور خونو خودمونم کلشیسین هر شب قبل خواب یک عدد تا وقتی که نرمال بشه اما اگر خون نوسانی داری کلیه تم کم کاره حداقل هر ماه یه بار اینا خیلی برم میکنه با آمپول 125 سیسین باید این مایه اضافی تخلیه کنه. دردش هم شدیده درست. پس موازه به خوراکیاش باشه چربی با ترانس بالا نخوره، کردنی، تفتادنی، بودادنی نخوره. چیزایی هم که سدیم فشردهش بالاست، مثل آب میوای شیمیایی، مثل نوشابای گازدار که سدیم فشردش زیاده. در ایران ده برابر استاندارد جانیه، در خارج مخصوصا کشور عراق بیس برابر، پس این نوشابای گازدار آب میوای شیمیایی هم نخوره، رود ده دقیق... خوب میشه ده دقیقه دیگه زمان داریم سه تا داریم چند تا پنمک فردا میپرسیم این در مورد هپاتیت های جمالپور از شهر کرد خیلی خلاصه بگیرید هپاتیت چربیای با ترانس بالا نخور هر روز تو جیره غذاییت آب سیب باش این داروی عمومی درمان هپاتیت اما اگر هپاتیت نوع بی بود یعنی یرقان پیشرفته بود اینجا حتما جوشانده پوست گردو بلگه گردو پوست سبز مغز گردو به نسبت مساوی اینا رو به مدت 20 دقیقه میجیشون نصف استکان تا یه استکان می‌خوره فقط سه روز بیشتر لازم نیست درغان پیشرفت افت میکنه. تموم است. برای گرچه این بزرگوارا اگر هپاتیت بی دارن باید حتما واکسن هپاتیت بی رو بزنن حتما. حسنپور از شهر بوشهر گفته بودن که جوش صورت و درمان استرس درمان استرسشون قبلا خیلی صحبت کردیم. امروز الان گفتیم جوش صورتشون خیلی مشترکه که با فرماک که آمده۹۳ دوباره ص دوفر۸ این سال دیگه ای که باز پرستادن برای پوست که کمک داره و جوش های سرسی و جوش های عادی چی خوبه که فکر میکنم محوط به همین جوش صورت باشه در جوانان و نوجوانان عزیز کالبرند غرور جوانیه های غرور جوانی اینجا مواد ای که می‌خوری مثل برنج ماکارونی سیب زمینی کوکو سیب زمینی چیپس از این حرف یا نمیخوری یا اگر خوردی حتما باش چند برگ کاهو یک لیمو شیرین تو جیره غذایی‌ش هم تو 24 ساعت چند لیوان آبو بخوره دست. اصلا دیگه جوش نمیزن جوشو هم غالباً قالطی باهاش نباید بازی کنن جوش رنگدانه های پوست زیاد میشه که کمک میزن جاش گود میشه، چاله چاله میشه. پس <میک> با این دونه های چرکی هم نباید بازی کن. حالا بخواد دونه سر جای خودش خودش خوش بشه بیافته پنبه رو آغشته میکنه با آبلی موتورشه تازه روی جوش میذاره ورمیداره. خودش خوش میشه میافته. لازم نیست ترکونتش این جوش های غرور جوانی با جوش های زونا فرق میکنه. یه بار دیگه آجاوا جوش هایی هست که ریز سوزاننده هست این به خاطر لباس های نایلونی یا نخهای پولیستریل مپوشن لباس های نخی کامل یا لباس های کنفی کتانی بپوشن که خونک کننده است و عرق بدن رو میگیره همچین خونک کننده های طبیع مثل کاسنی مثل کاهو مثل لیمو شیرین مثل دوغ شیرین کمچرب بدون گاز شیرین کم چربه بدون گاز از این چیزا تو جیره غذایی باشه خب سال بعد یا خانم گندم کار از بهشهر اشتباه نگفته باشم گفتن که کم خونی دارن همون کم خونی که هش بوده بعد به 12 برسه سردرد و سرگیجه و گزگز سر دارن تروق شدید هم دارن که پاسخ ایشون رو هم بتید. بهترین دارو برای ایشون سه چیزه اصل واقعی شده صبحگاهی آب سی به شامگاهی هفت عدد خرما خورما بعد از نهار فشارخون انقبازیش اگر هشت میاد به دوازده گرگرفتگی همیشه بدنش داغه تب نداره آنفولانزا نداره سارس نداره افونت, داخل افونت داخلی نداره اینکه عرق زیاد میکنه از اینجا تا اونجا میره خیص عرق میشه لباسای زیرش باید عوض کنه این ضعف عمومی شدیده کم خونی داره افت فشار حالا هر سه تا اینا با هم خوب خوبشه. اصل رقیق شده صبحگاهی هفت عدد خورما بعد نهار آب سیب شامگاهی حالا این آب سیب میتونه میتونی یه قاشق پلوخوری عسلم توش هم بزن ضعف دو هفته رو نیا این داغیه همیشگی بدن با این که افونت داخلی نداره تب نداره این علامت کم خونی شدیده خب سالی که ایشون دوباره یه سآل دیگه هم که خوهرشون باردار بودن و یک بار صدق جنی داشتن در دو ماهی که الان هم فیلی نگفتن چند وقته که باردارن لکه بینی دارن این خیلی کوتاهش اشاره کنید بیشون بار سنگین بیش از سه کیلو بر نداره حضرت خانم حاملهی که لکه بینی داره بار سنگین بیش از سه کیلو بر نداره کفش یعنی پاشنه کفش بیش از دو سانتی متره نپوشه پیاده روی طولانی نکنه چرخش سریع کمر نداشته باشه استرس نگرانی مستمر دلشوره، دلواپسی، استراب نداشته باشه مدیریت کنه در بحران چیزهایی که قاعد آوره نباید بخوریم مثل دارچین مثل زعفران مثل کاهو مثل باقلی یا باقلا اینا قاعده آوره نباید بخورید اگر اینا رو بخورید ما بند ناف کم کم جدا میشه و بچه سخت میشه پس این چارتا رو تو دوران حاملگی نمیخورید دوباره تکرار میکنم زعفران دارچین باقلا کاهو شما فعلا نباید بخورید